یعنی مستعنه بسید یعنی جمعه اولیی که بعد ندارد به مالا جمله نده حل مستعنه بسید جمعه مستعنه بسید ولی یعنی مختصه بود همچرا از این کنون یکی چلام باش آغاز شده نوسته نامزن نامزیده به بلکه منقطه از ما یعنی از نظر معنوی اختباب داره اما از نظر لخی رسید و مثل این آدید فلا یه قررن فلا یخزن که قولمون این خدای نبی هرچه هم می فرماید که فلا یهزون چه پس لا یهزون چه خواله نکن محضون نکنه تو سمجین نکنه تو گفته ایشان فلا یهزون چه یهزون به لا یهزون به نه کاف مفهول خواله هم باید گفته ایشان تو رو مخزوم نکنیم این این نبه ازدت الاله ها علم یعنی همانا همه گونه ازدت همه ازدت ها و همه قربه ها و حضورتی ها الاله جمعی ها مخصوص خدای داره داره داره داره جمعی ها. هر که ها راست هر ازدتی که هست شکل داشت لله جمعیه خب این انا لعزت ها انا خبرش جمعیهن حال از یعنی ان لعزت ها ثابت این حال داخل ثابت خب. این جمله محال را نه جمله مستثنثه است منقطع از ما قبل خودش از نظر لغسی میگه چرا میگه نمیشه منقطع نباشه و این معقول قول باشه میگه نه معقول قول هم درست قول مستره اضافه شده به واعل خودش یعنی به قنبر محزون نکنه ضرر کوتن این کو کبار چی میگوندن؟ اونو نهارو نکرده این اینل ازتال الله جمیعن نمیتونه مغبول کی باشه؟ کبار باشه چون اگر این اینل ازتال الله جمیعن مغبول کبار بود تیبیه این قول پیغمبر محضون نمی کرده بلکه از لایه این بوده بلا یخزون که قوله هم اینهو شاعران اینهو مجنون، آه این محول هم محول هم صاحب میگه این گفته ها تو رو نکنه اینا چیز نیستن این لعزت هم لده هم جمعی هم ازداد همه شما رو خدا دارد تو نمایندی ایمان قولمون ها دارد پس محول قولمون که مستر اضافه شده به خودش محولش بود هزر یعنی خدا حالا حرف اونها رو نهر نکرده تو حرف غلط اون کسی میکنه و اون چه کاره حرف ایناست تو رو به پوست نمیدازه چرا انل بل عزت الله جمعی این اِن بل عزت شما ندید که اگر یه اِن ندیدید بعد از قول بگید این حاله معقول قوله نه اینجا از محلوی من قول نیست محامتی از ما قبله و جمعه بر جمعه محلقه. در این جملات و امنا رو بهش بیانی مستنفه چی چی؟ بیانی مستنفه جی جی؟ مستنفه هست, هست, مستنفه هست. ما بیانی سو بهش به دلیل که علت هست برای فعل ماقر علت برای فعل ماقر جواب سوال محطنه جواب سوال، معمولا نبایی من من از اموال ها خود من, خود من, از خود خود من و صد این سلده به مناسی دعا کردن و در هر خوشون هم دعا کن این اگه اومدن خود رو بمس دادن و کاراشون رو ارجام دادن سلده رکیم کن شون بگو دستیون خدا خیلی نکنن یه دعایی هم برایشون بکنن این نکار رو یه دومایی همی دیدن خوزمه هم و سلده رکیم بعد سوال مخواد بکنه چرا؟ چرا دعا یه امنس اله این امنس سکنه مثل یه ها از و میگه خبکش چه دعا کنیم یه امنس اله دعا هکه سکن و تنمون زیرا دعایی تو باعث میشه که اینها پیدا کنند بیشتر تنمون امنس اله هکه سکن و سکونت و سکینه کار رو بکن ام. اینجا میگه بالا یه دونجا بولو قول تو اینها رو به قول اینها تو رو به غزن رو قمن چرا؟ به در که این در ازده داده این زیرا عزت باره به چه کارایی که بکن تو رو مخزون خب و کزار و کذا که جمله تول آمله می ملغا میخوندیم و همچنی جمله آمل قلبی که ملغا شده لدخوری ملغا شده به خاطره متاخر بودنش مثل زیدون قائمون علم تو زیدون قائمون علم تو میگیم خب اونی که ملغا شده مون به خاطر که وسط واقع شد چی؟ میگه اون معترض است درست مرد احراوی نداره ولی معترض است مستعنفه عمل اممال ملغا به توسط دیگی و جملتون معترضتون جمله محترضت جمله مستعنفه ایست میشه جز قسم بعد چهار اونم مرد احراوی نداره اما یه جز جمله مستنبه، از ثانیت و المعترضتی دوبارمی جمله معترض است در اینگل یعنی متوسطت رو بین شیعه و اون هم جمله یکی بیاد متوسط با شد وسط با شد بین دو شیعه حالا دو شیعه میگه دو تا چیزی خاصی رو نمیگه دو شیعه. که این صفت دارن شیعه اینه من شعنه ما ادم متوسط و دل بین همه من شعنه ما که از شعن این دو عدم توسط اجنبی، اجنبیتونام یعنی چی؟ یعنی چیزی که معموله اونها نیست. عدم توسط اجنبی بینه اون دو شیء. بین دو شیء فاصله میکنه که از شأنشون اینه که اجنبی بین اونها فاصله جو ما بعد بین مصداق خبر فاصله همون مثال جمله منو رو خاهم. خب شهن مطبع خبری که جمله وسطشون بیاد شهنشونی که مطبع روی تسبید رو خبر خبرش هم به مطبع جمله درست کنن اینکه وسطشون چیز مثلا بین صفت و محصول میاد خب شهنشونی نید که بین صفت و محصولی جمله هیچکای با نه وید وید متوسط در تو بین نشه این من شعنه ما قبل مقدم عدم و توسط اجنبی این بین اوما عدم مطلب عدم توسط یک اجنبی بین این دو شهر خود تا اینجا میگه مثال میگه و سفه و غالبا بین بین و معمولی این میگه که هم شامل فایل میشه هم همشامل نایجبایل بشه همشامل مقبول بشه به تمام اقصابش میگه قالما بین فعل و معمولش میاد ول و خبری و بین مفتده و خبرش میاد و محصول و, و, و سرته و بین محصول و میاد والقسم و جواب هی و بین قسم بر جوابش میاش و جوابش می‌ناش و موضوع و سخن حالا مثلا مثال بزنیم حالا, حالا یه حرفی شو مثلا بین فعل و مفعولش بگیم ضرب کرد والله زیدان زارب خب و بلوه زیان خوب. آره چوبلی چیه؟ چوبلی مدرجه. پس چی می‌شه؟ زرده و فیل و فیل وایل این طرف و مقبولش، مقبولش. مثلاً بین مقتد خبر که مثال ممبغول. زادی، مثلاً زیدون، علی دو. خواهد. ممتول و سرش مثل جا الگی من لاه قد اکشم کنید آرنج جمله والله چیه جمله قسم و محترج واقع شدون بعد از آن جمله روز سلام قسم و جوابش مثل والله انجاع زیدان والله انجاع زید لا اوشرمان لا اوشرمان این لحو که من درم اون جواب چیه؟ قسم الله داره اونو یادتون اماسی کسیون اگه قسم اون شرکی داشت همشان جواب براتون توی ما میریم؟ برای برا جمعه اولی میریم توی دو یه دوبو میمستران میزیم برای این جا زیدان جمعه مدرز میشیم جمعه که هستیم میبشیم برای محطوب و صفتیم بینیم محطوب و صفتش زیدان رجالون و الله کریم زویدان رجالان و والله کریم ببینید که بین محطف صفت هم بکنه فاصله خب نام مثال های سالهی زدیم که بایدتون هم بتونید سالس قسمه سرمان از سالست و علم مفسرات جنبه چیه؟ مفصلت. جمله مفسره از این سو باید و این یعنی جمله تفسیر میکنه یه چیزیه که او در آل مفصل و یا آل فوز باتون خا شفتون لی ما تریک فوز اونی که روکش کلام که بهش جمله تفسیریه هم جمله یک رکن کلام نیست بزنست کاش است بیان کننده است لما تدیهه یعنی ما تدیهه کاش بعد آنچرا که تدیهه یعنی تقا و بعده تقا و این جمله بعده میگه جمله مفصله، جمله ای که بزنست رکن کلام نیست و تقنیم کننده هست. و کاشف و کشف کننده معنی چیزی چیزیست که این جمله بعد از اون واضح میشه اون لما تلیهه تلیه بایرش میخوره به کاشفه وزله و هوش میخوره به ما و خود اون لما نامشو میذاریم کنار ما مفهول کاشفه یعنی عدد میشه؟ و یه از باز ر و این جمله مفصل پده ای است که چشم کننده بیان کننده است آن چرا که واقع می شود این جمله بعد از تلیه ده و جمله که بعد از یه چیزی میاد و اون کارش میکنه دوش می. نه ان مثل ایسا انندلا، که مثل آدم خبیه یه جمله است یار کنیم اینم مَثَلَ ایسا ازدالله که چی, چی؟ که مثل آدم به مسیحی میگه که اشکال دارین داشتن که چجور میشه که حضرت ایسا بدون پدر به دنگه آمده این امرو برای شو بشه این یعنی شعن موقعیت نه مثل باید یعنی مثالوینا این نه مثل ایسا یعنی شعن و موقعیت ایسا از جهد خرم و آفرینش در نزد خدا همانند شعن و موقعیت کیه حضرت آنم مسئله عیسی اسم این است این در الله حال است از در اون مسئله یعنی همانا مسئله ایسا شن ایسا در حالی که در نصد خدا بخواهیم بیاسش ببین که مسئله آدم این در الله آدم شو خب الان این جمعه مبهند خب موقعیت و شهن حضرت ایسا از نظر آخرین نشمسته حضرت آدم هست منظور یعنی چیه؟ خودش بزدگیده خلاق و خونه تراب منظورمون اینه که حضرت آدم رو ما هستی آخرین از خاک یعنی نه پدری داشت و نه مادری اگر شما اشکال دارید اشکال بزرگترتون بعد کجا باشه حضرت آدم باشه باز حضرت ایسا مادر داشت یعنی اگر شما خارق لادر رو نمیتونید به پذیرید خب چطور مان حضرت آدم رو ما مان حضرت ایسا رو نمیتونید به شخص شد این خلقه هومنتراب نشون میده که ما حضرت آدم رو اگر مشبه هم به قرار دادیم با کاف تشویر کردیم حضرت نیسا رو به این جردی که بگیم چیه هر دوشون آخری نشه چی بوده؟ غیرادی بوده خارقلاده بود پس این الان خلقه هومنتراب جمعه ایست که تفسیر ما قبل میکنه توضیح میده که ما منظورمون هرز تشبیر کردن حساب آدم چیست؟ اینکه که هر دو خلقتشون خلقت آدبی نبود توضیح میده و محل اعراضی هم درست فقط از جهت خیر آدبی بودن ها بعد میدونید که یه چیزی رو به یه چیزی تشبیل میکنن کدوماشون باید قوی تر باشه؟ مشبهان به یعنی ما میگیم زید مثل شیر است حالا زید قوی تره یا شیر؟ شیر زید روش میگن مشبه شیر رو میگن مشبهان به اون مثل که اون وسط هستش بهش میگن عدات تشبیل ما از این تشمیل کردنمون یه بچه شبه هم در نظر دارم زهره نمیخوانیم کنیم بشید در جهت دوم داشتن از یه جهتی تشمیل کردیمش بشید این کدونه شجاعت اونوش که هم بچه شبه درست حالا شما هم که ایسا رو تشمیل کردید به آدم از چه جهت تشمیل کردیم؟ یعنی جهت این که آفینششون خارقلاده حالا کدونها خارقلادگیش پ حضرت آدم شده مشبه ها برد میگه ولعصح قول صحیح اینه ولعصح انهو لا محلله ها اصح اینه که انهو همانا شهنین است لا محل ها این جمله مفسره محل ارابیگی و خب بعضی اون قرار شدن که جده مفسر محل ارابی دارد به حسب اون چیزی که داره تفسیرش را این می گفتنشون می بینم معل ارابی هست و وقیل از حسب ما مفسر رو و گفته چی گفته جمله مفسر محل راوی داره میگیم خب محلی داره رفت نه جرمی که به حساب که داشته چهارش می کرده تفسیرش می کرده اگر اونی که تفسیرش می کرده چی باشه مرخوب باشه چه مرخوب منصوب باشه منصوب مجبور باشه منصوب به حساب ای که داره حالا توی این خلق همونتورا برخلاف رو می که شما تو کتاب هدایی و غیر خودید این تفسیر عداد تفسیر همراهش بگوید نداشت تو کتاب هدایی خوندید جملات تفسیریه محمولاً بعد از چی واقعاً چند عداد تفسیری مثل چی؟ اند و ناهده اینا ها اند یا افتادی یا مثل ای آه بهتونه سینی؟ سه ای تفسیر اونها یه جمله مفصره هستن که یک جمله مفصره جمعه مفصره تعریفش اینه جمعه یکی بعد از یک مهم میاد و کاشف اون مهمه و این جمله قبله رفتی کلام نیست حالا عدات تفسیر داشته باشه یا عدات تفسیر بگیر نداشته باشه پردی <تصحصان> بسر و الله <اللحان. خوب. تصحق> به سر چهار اروا به سله موضوع سله موضوع هم محل عرابی نداره چون گفتیم جمله ما باید برون بسله موضوع. و بیشتر تو گونه ها خبرت گفتن. سله موضوع شرطش اینه که باعث چی بشه؟ خبری که بشه. چون می‌خواد بیاد توضیح بده موضوع دیگه. با چون به این شاهی ما قادره نیستیم که موضوعو کارش کنیم. توضیح الضی یعنی کسی که حالا الازی، شما ها ولی هایی گفتی الازی یو, یو که بعد از الازی میاد الازی رو معلوم بکنی میشه الازی یو یعنی چی؟ یعنی کسی که به ما درست رو میتونم. پس بنابراین جمعه باز بود بعدش جمعه خرزی باشه تا ما خبریه معلوم هم باشه بیشه مخاطر دوم ها علدی رو مشخصش کنه اما ببینید من گفت دارم علدی یا در ولی اگه بگم علدی یدرس و اندزی اونی که درس رو بیشه, بیشه اگر میشنافتید یدرس و رو مثلا من بگم جا جانا همزه یا اللذی جا انی امسر یعنی کسی که دیروز اومد پیش اومد شما چون که لذا اللذی هم برازو مشخص اگه من بگم اللذی جا انی امسر رجال کریم اونی که اومد دیروز پیشه من مرد کریمی بود چون نمیدونی که ولی اگر میشنافتیش من دونم تایی که گفتم اللذی جاهنی همسه شون میتونید چیه مثلا مواقع رجال رو برای تو مصورتون میبنی داده میکرید از باید شبریگه باشه و معلوم باشه برای مخاطف مخاطف مونم تو پارسی همینه بکنید باشه یا معلوم نباشه و مشغول باشه محطور باشه مشخص مجتملتاً الان زمیر متابقه در موضوع و مشتمل هم باید باشه این سله محصول و که مطابق با محصوله که به زمینش میگن چی؟ قاعد قاعده سله مشخصه و این زمین باید مطابق باشه ولی در فل... در مثل من ما محصولاتی مثل من ما جایز است مراعات لفظش رو کنید و زمین مبرد مزکردش رو بلگردید جوی لفظشون حالت مورد مزکرد و جایه تمام مراعات معنا رو کنید زمین طبر معنا پید الان مثلا خدا میگه ون کبول ون کبول ما تا و لکو. ما تا به لکم من انسان، این من انسان ون کنیم. ما اطلاع می دانیم. ما مشورت دیگر مقدس ما یعنی تا بلکن برای شما تاییدان. مشکل شرعی در ازدواج با ما ها نداریم تابلکم اون کسانی رو که تابلکم از کی منندسان و منن یاد میکنه که ما تابلکم میشه الان زمیر تابل چی برمیگرده به ما زمیر حوبر مفرد مذکر ولی در صورت که ون که رو ما ازدواج کنید کسانی را این منظور کسانی را کیه با من بایان جمعه زنان اینجا میتونست خدای تعالی بگه باقا بلکن هم بگه چی؟ ما حب ندکن اگر ما تابه گفته مراد لبسشو کرده اگر ما حب نمیگفت مراد چی رو کرده بود؟ معناه کرده در من و ما زمین این استثناء رو داره میتونه مطابق بیاد میتونه مطابق مطابقت معنایی تمام اعل خامسه تو المجاب به حل قسمه جمله‌ای که باید جواب قسم بده میشه نحو یاسین هر کاریش نداریم این رو مقدس وله قران حکیم یعنی اختمو وله قران وله قران الحکیم هم صفت قرآن ولقرآن جار مشهور متعلق به بخصموی مقدر بله پسند این نکل همینر مرسلین این این نکل همینر مرسلین چیه؟ جوابه اصلا محل داری رابی چون جمله اسمی هم بوده با اینه و لامه بوده کافت اسمشه لام بشنگر لامه مزهلقه من مرسلین جار مشه متعلق و بحامل یعنی تو یکی از رسولان حالا اینو خوندی متا اجتمع شرطون و قسمون همین از من توی مثالی که برزرم تکرارش کردم متا اجتمع شرطون و قسمون هر کجا شرط و قسمی جمع بشه اکتب یا به جواب متقدمه منخوما افتفا میشه به جواب هر کجایی که چی بوده مقدم بوده لَإِن شَكَتُم چونمون هم شبونه اللام کوته اینجه لالت برای جواب اومده برا قسم چون قسم مقدم, مقدم. كفاتم... عَذَابِي بدون امفاد جواب اومده جو برا حالا اگر عجب... اگر شرق مقدم شد گفتیم انقام از ایدان والله یعنیم اون بود انقام از ایدان والله اون والله چیه اون وقتت محترزه میشه به دیگه جواب هم به دلیگه جواب برای که ها بودیم ماشه. جواب برای یک مگر یه جا یه جا هستش که چه،, چه قسم مقدم باشد چه نباشد جواب رو برای شرط میارن یه جا هست که جواب مال شرط میشه چه قسم مقدم باشه چه قسم مقدم نباشه اون هم جاییه که جا. هم بر قسم و هم بر شرط بر هر دوتا یک مقتده ای شده باشه. بر هر یک مقتده هایی شده باشه؟ مثل اینکه زیدون و زیدون سال این بال ما و لابه اون علات و این چی جواب برای کی اومده شن با اون که مثلا موقت در دومی که قطعا مقدم هم بعد خل جمله این قامت و امطور میشه چی؟ خبره زه میشه مفتدار جمله بعدش میشه چی؟ قبر میشه چی؟, می چی؟ الا جواب مال مقدمه مگر الا ازا تقدمه و ما مال من نسکه تقدمه ها قلقه چلا اذا تقدم قما مگر زمانی که مقدم بشه بر این دو تا اون دو تا شرط و قسم مگر زمانی که بر این دو تا مقدم بشه ما یفتق رو اله خبریم چیزی که نیاز به خبر داره مثل مفعول مثل اسم جمله شش و از سادستو المجاوب بها شعركم غیر جازمه جمله ای که جواب چرته غیر جازم باشه مثلا زدم مثل جا جا انصر الله و الف پر قسم ده سمت دیگه جمله است معربی یا مثل لوکان فی معاده تن لله لفظتا این لفظات معربی چون دو وجاش است حسن اموجع المجاب به حاشعه تن غیر جازم نه و ازا جهتنی اکرام می‌کنه الان جمله جهتنی معل دراوی داره ها چرا <تصفيق> چون مزاره مضابن... اینا که گفتیم ازا اضافه میشه به وجه شرط منصوبه جزای شرطه خب خودش هم محدودیه انجام بده تا اما اکرام دو که دیگه در محل جزم به دلیل در محل جذب نیست؟ به دلیل که چیست؟ ازا دهنده همونطور خود فعل جهتنی هم محل جزبی نداره جمله جهتنی در محل جلده اما خود فعل جهتنی مجلوم نیست محل دهند با اونکه ها نیست محل چرا؟ به دلیل اینکه هزار جزب میگه وقتی حکمها المجابده ها شرطون جازم میگه در حکم همین جمله جوابی که جمله جوابی که برا عداد شرط غیر جازمه در همین حکم جمله‌ای که بیاد جواب شرط جازم واقع شد اما لم یفتره میگه با دیگه بگید نداشته باشید و ازای پجایی هم نداشت قبلا گفتیم اون جمله که بعد از پا و ازای پجایی میاد محلم مجدونی مثل چی نبو و اقوم عقم. قرد الان جمله تقوم و جمله عقم خود جمله محل اعرابی نداره من این توضیح دادم به دی درس دورش خود جمله محل اعرابی نداره چرا؟ چون فعلش شده مجدون خود فعل شده مجلوم دیگه جملهش مجلوم نیست جمله شباید است از فعلو باشه الان جمله تقوم و اقوم چنه جمله جمله مستعن محله رابیه هم؟ نداره اما خود فعل تقوم و اقوم چیه؟ مجلوم حالا اگه به جای اقوم بود فعنه اقومو بود و فعنه اقومو یا انتبون فر ازا انعقومون این طور بود با بود یا با ازا مثلا بود اون موقعون جمعه انعقومون چی؟ محلن جواب شرق و یه در حکمه همی جمله ای که جواب شرط خیل جازمه جمله ای که جواب شرط جازم داره شده ولن یفتر این بهتواهی بابا بابا و حالا اینه محترم با یا ایزانه به نشده مثل این طبان که طبان و عقوم خود این دل جمله جمعه مهند ارادی نوع هفته از صادر کن عطاله عطله ما لا جمله تابع, تابع شه به یک جمله که خود اون جمله هم محل اعرابی می... عطاله عطله ما لا محل لها جا انجه ی اون جمله جمله مستقل است بعضی هم نعت میشه باش ما دکتر شما معطوف شده معطوف کننده به اعراب داره جاعنی الازی زارنی اینجا سله به سله مرد اعراب نده جاعنی به این بقایی جا مرسول به نظر طاقه از الازی زارنی به رو باهیر مقبول سله الازی خایلش هم آهد بسید و اکرم دروه عکفه به های زارنی خب زارنی خودش مرد اعراب نداشت اکرم دروه هم بگید اگر یه چیزی عط شده یه چیزی یه حکم اونه داره دیگه یعنی اکرامتو هم الان انگاه سره یه انوزیست باید این هم دارای چی باشه؟ آیت باشه نزا های اکرامتو بود انوزی بردیگه چون محبوب به سره سره اصاب میشه نزا به آمین جا انوزیز آره بود انوزیم میگه ازالم یج علیه بابو دله ها به, به تغییر کرد میگه اون تشرت بگیده شما این باب اجرام دور رو بابا چی بگیری؟ آتفه بگیری و اجرام دور رو عطفش کنید به جای سارنی و دیگه جنبه مرل عرام نداشته وله اگه باب اجرام دور رو بابا حالی دیگه. و چون گفت این فعل ماضی اگه حال بابا شد نیازه به قدره قدم تغییر گرفتیم مشخص یه نیش. و موقع چون به قد اکم درو داره محل اعراب میشه چیم چون محل اعراب میشه؟ این چون منصور؟ از برای خائل زارمی دیگه ما که به شما بگیریم شون به محل اعراب نداره بشت دیدید که بابش با حال باشه و از توی میشه اگر بابش با حالیه یه قدم چون به قد ما زیمان نیاز و بعد اون موقع جنفه قد اکسم دو رو محلم منصور و حال کردیم این محله اعرابی داره خب حال از چی میشه؟ اینه حال از دایه فائل زارمی از آدم بیاج عده ما گفتیم این محله نداره انگامی که قرار داده نشه با آف بنایه حال بکنه اینه قرار داده بشه لاره یه حال بخواد بشه اگه حال بخواد بشه باید با چه تقدیر حال بشه؟ بیل موسی اگر حال دارو شد با واقعا هم دور نیازه بره تحتیم ازادن دو جهرم دارو دنها به تحتیل هست خب این خاتمه رو بخونم چه خونگی رو میش از حق بکارش کردن خاتمه بود به چاشنف دیگه از یک شنبه که تحتیل ایش نمید که ساید این بحث نادیه که دیگه کمتر بسید خاتم احکام جار رو برمجبور و احکام جار و مجبور و, و همچنین جمله جمله هم هست بشون دیگه بخواهد معروفون رو زیدن اضافه وقعه عهدو بعد از محرفت محضه اگر یکی از, از اینها بعد از, از, این بعد از این محرفه محض بیاد اسم عالم بعد از مرده محض یعنی معرفه که مشخص کننده یه نفره هیچکونه شاعبه ای از نکره بودن درش مرده محض محض و اون زرکو جاره محض اون رو چی؟ حاله این شه حاله من گیرم که بعد از محض میشه چی؟ مثل چی؟ رعی طوله کلاله مثال جمعه این از این این از این این و این از صحابیه این از صحابیه این چی؟ یعنی صاحب تن نوجود هست و هم چیه؟ مقدر زرکش میشه زرک چی؟ مستقر آمل آمله مقدره اوامل این اول نکر از این مقصده از روژه مقصده و جارو مقصده بعد از این نکره مقصده یعنی نتیجه ای که هیچ کن مخصص محصص. بعد از نتیجه ماته پس فکر میکنی رجولم منالکرام اندام؟ حالا رجولو میگذارم منالکرام چهارم از مکان دارد که یه موجی دنبالش میاد چیه حالا حالا به یه استعداد مخصص برای اینکه رجال شده محتضا چیه؟ به چه دلیل رجال شده محتضا؟ به دلیل یکی من چیه؟ سفتشون نکره مخصص هست این یکی ما الگورو قفلیز رو همه یه مهمو دقوی میگیریم مهمو میشه سفت قفلیز میشه نکره مخصص هست میتونه باشه و در آقایت هم حالا اگر بعد از قیل منظوری بعد از غیر مخصه حالا غیر مخصه یعنی معرفه مخصه باشه یا نکره مخصه نباشه معرفه мخصه نباشه یعنی که معرفه ی وحلفلام باشه بهشه که معرفه ی وحلفلام باشه اما حلفلامش برای جنس معرفه ی وحلفلام حلفلامش برای چی؟ جنس مثل عمر رو علال لعی، عمر رو عمر رو عمر رو بر انسان که چیه؟ جنس دارید این برای آدم قصدی روزر میکنه جنس یسود پولی که به من چیکار میکنه سبت میکنه پرشت گنبالش داره مذایی خود دنبتا قلد لایمی یعنی. دیگه ازش نیزدرم و میگن محور به قصدش مجلسه شاهد میسا سر جمعه این جمله یسود پولی بعد از چی با شده هم لایمی این لبیه نظره به ظاهرش بکنی چیه هست؟ ولی نظره به معناش بکنی دلالت جنس بکنه جنس لبیه شامل همه میزید معناش نکره. لفظش؟ محرفه. این میشه معرفه غیر محرفه حالا این غیر محرفه نکره مثل رجلون آلمان منال کرامه اندامه رجلون آلمان منال کرام اندامه الان رجلون چیه؟ مقبله آلمان سفردش بسید نکره مخصصه منال جارو جارومه حالا بعد از چی اومده؟ بعد از نکره غیره؟ گیج این چیزها این چیزها ها خب او... کلمات معرفه غیر یا معرفه غیر یا نکره غیر معرفه احتمال دو چیز بده میتونه حال باشه میتونه یعنی اون یثربونی که وقتی جمله رو چه زرد کجا رو حالا به جای یثربونی نموش فدار مثلا یا اندزدین زرد دیگه جا ماجراش فرق نمی این جور جاها ظرف و جار و که بعد از معرفه غیر منصولی یا نکره غیر منصولی اومده توی که دوشه ها بگیر است و معلم منصولی میتونیدم بگیر صفت و اعرابش به اعراب مصولی حالا نگاه کنید؟ دیگه غیر منصولی و محتمل اون ما. محتمل است به هر دو هر دور اجتماع در است داده و لابود این تحرقه ای ما به جارون از به زرف اطلاع به دل تعلق داشته بشن اوانه رو نکنم به انا مار بزیدن. بزیدن او به ما بیه راه یا به چیزی که درش اشت روی از به هست این شکریه انا به زیدم زهیدون مدرسه، فلمدرس هسته زهیدون حسدون فلمدرس هسته الان فلمدرسه متعلق و حسده به چه دلیل؟ ببینی که حسد در معنان و معنان چیه؟ شجاهم نشته راهی زهیدون حسب متعلق در چهار چهار واجبه یاد کناسه نیست خبر سره موسود سفر حال سه جاش یا سلت هم مثل علتی فردار زیدون علتی فردار که فردار متعلق یه است به یه استقره هست بهاد کارش یا خبرن مثل زیدون فردار فردار رو موجودون یا استقره هم یا حالن مثل لحیتون ملاله این که بین از درها بیدیم اون به یه استغرده باشیم به یه مطلقه یه مطلقه هایی از داره هم تمام که در این جهاز واجبه حامل مطلقه هر کسیم یه جا شبایی خطمان ده در دو دو شمده در دو دو در و عده اتمد علامتی او استقامه جازنگیت و الفائل. یه جا هست که ظرف و جار و میتونن محتدای وستی و رفت بدن به چی به و احتفاق کنن مثل زیدون میکنن شما چه دوی وقتید همزه همزه استفان غای ما مطلعه بسکی زیدون چی؟ بایده ست ما میگه در بزاره حالا مثلا همه اقای ما زیدون بشه افتداره زیدون تو دیگه همزه همزه استفان فتداره مطلعه بسکی ها متعلقه یه مستقرمانی به اعتباره زیدون این فقط همینی یه با ازاضی اونن اگر اگر چنین بودن یعنی چی یعنی خبر بود حال بود نمی دونم سبب بود این جوجی ها اعتماد الان متن استفا یا اعتماد کرد به نفع یا استفا یعنی جار مجرور در یک کلمه نفع یا استفا در جواب جا جاز اگر فرق وارد جایز از که غرف بدم میکنه اونجا جارو مجدید و زرف عمل میکنه پس اگر شما پرسیدن که زرف و جارو که عمل میکنه چی جواب میدید؟ میگید در موقعی که خبر بشه سفقت بشه حال بشه یا سله موجود بشه درست شد در جایی که بعد از نفیل مثلا یه مثال من بزنم ببینید شما میگید بداره ابو زین فدار ابو زین چون می ترید دیگر فدار متعلقه به استقعد و ابو ف فدار یعنی فدا به اعتبار اون ابو به عنوان چه یا مثال دفر. زیدون، فتداره، عبود زیدون، فتداره چی؟ عبود میتونید زیدون چی؟ مبتدا خبرش عبودو چی؟ قائل فتدار فقط این عمل کرد. در مورد استفان میشه مفتداری بسید در مورد نقضی اشتفان اون زرگو جارو مجموی شن مقدرهای رسیم نبجا احلگی فتداره ابی به تحکیب کردیم الان میگید جا افل عبودی فاید فتدار مطلب و به یه استقرده سله عبودو فاید اینجا چی باقا شده؟ سله بود مثال روپا داخل من ما این دید الان ما مایی چیم؟ اندی متعلق به یه استقرده چیه؟ پایل مثل اقای مثل ما و اف اللاه شکون بگید بگید اللاه چی؟ مقتداری بسیدی شکن، هم در این دوتا مثال نقضی استفاده هم جوریگه هم میشه میشه این دوتا رو بگیم فتا اندی و فتا خبر مقدم همه و شد کن بود جا زنگرپن رفت کنیم واجب نیست بگیم من جوریگه در جوریگه نیست جایز رفت ده ده و اون دو تا رو به عنوان فایل برداره وسط ما اندی از زیلان ما اندی از زیدان. باز هم همین دو تدکیر دادیم میتونید اندی خبر مقدم از زیلان بفتر اندی چی مختبای وصلی تکیه کرده نظر زرکزار و از زیلان قائل سرد مصد نان شامуд یک آgas